دیدم به خواب دوش که ماهی بر که از اکس روی او شب هجران سر آمدی تعبیر رفت یار سفر کرده میرسد. رسد ای کاج هرچه زود تر از در در آمدی ذکرش به خیر ساقی فرخند فال من که از در مدام با قده و ساغر آمدی خوش بودی ار به خواب بدیدی دیار خیش تا یاد صحبتش سوی ما رهبر برا آمدی فیض ازل به زور و زرر آمدی به دست آب خزر نصیبه اسکندر آمدی آن اه یاد باد که از با و مرا هر دم پیام یار و خط دلبر برا آمدی که یافتی رقیب تو چندین مجال ظلم مظلومی ار شبی به در داور آمدی خامان رهن رفته چه دانند ذوق عشق در یادلی به جوی دلیری سر آمدی آن کو تو به سنگ دلی کرد رهنمون ای کاش کی که پاش به سنگی بر آمدی دیگری به شیوه یه حافظ زدی رقم مقبول طبع شاه هنر پرور